هفت اصل آگاهی ربازار تارس. اکنون میخواهم درباره هفت اصل آگاهی با توتوخم بگویم آنها عبارتند از قرشناسی سمیمیت از خودگذشتگی کمالگرایی، وقف تلاش فردی و احتساب این قوانین نادیدنی هستند کوشش می‌کنم بیشتر توضیح دهم برای مثال منظور از قدر شناسی سپاس گذاری بابت حضور معلم است سمیمیت به این کار می‌آید که جوینده را برای جستجوی سطوح بالاتر آگاهی بیانگیزد. از خودگذشتگی به معنی رضایت از اینکه خویش خیش فرگی را آدای خیش کیهانی کنی کمالگرایی به معنای پرورش رک نیست که نریافت کننده ارزشهای های از طریق الگوی مطلوب می باشد وقف مترادف است با انباشتن ذهن و روح از عشق، اشتیاق و ایثار نفس به آگاهی خداوندی تلاش فردی نیروی انگیزاننده هوشیاری نهفته در درون هر بشری است اکتصاب، یعنی پاداش برای فعالیت‌های مینبی روح تصاویر منفی آنهایی هستند که مجرای ابرآگاهی را مسدود می‌کنند تصاویر مثبت آن را میگشایند سرگردانی و گمگشتگی موجب پریشانی تجلیات ابرآگاهی می‌شود در حالی که ذهنی کنترل شده و تمرکز یافته آن را جهت می‌دهد آگاهی کیفیت هواست. می توان آن را واسطه یه تعدیل کننده برای کنترل کردن عواطف و هوشیاری دانست آگاهی از هوش، منطق و عواطف متفاوت است و می به درجات بالاتری راهی یافته و آن را در اختیار ما بگذارد تا میزانی که بتوانیم تصاویر احساسی کالبد را به آگاهی خود جذب کنیم در میابیم که در تسلط کامل بر تاثیرات محیطی به سر میبریم شهود یا اشراق یکی از ارکان آگاهی است لذا روشنی و سراحت هم از لازمه آن است به چیز را آنگونه ببین که هستند نه آنگونه که به نظر میرسند چکیده یک پندار را دریافت کردن موجد می شود از تأثیرات نامطلوب آن مبرا بمانی تو آفریننده خود خواهی شد و هیچ تأثیری نمی تواند بدون رضایت دافتلبانه خودت تو را زیر نفوز خود بگیرد امصال آتش، اصل دل، نور و برغ همه از یک منشه بوده و نیروی محرک عالم هم ابزار تعلق و وابستگی و تکیدی بر وابستگی به زندگی است این عنصر واسطه تعدیل و توضیح پرانا در سراسر مراکز عصبی اعضا و بافت‌های حیاتی میباشد این آنصر موجب گردش آزادانه خون می شود تجهیزات ذهنی عبارتند از هدفگیری و اجرا و از قدرت ذهن مشتق می شود عدم مقاومت خاصیت عنصر آب است و کیفیت ذهنی دریافت تأثیرات و این انعکاسات قابلیت استراحت برای تو، آرامش، رضایت و فرصت تفکر فراهم می‌کند. سبات و استواری کیفیت عنصر خاک و در طبیعت خشک، بلاتغییر و جنبش ناپذیر است. این انصار به تو قابلیت تصمیمگیری و پشتکار در پیگیری آن می دهد. این انصار به حقیقت کیفیت ذهنی اطلاق می کند و خود را از آن درا و هرگز اجازه ی به خود نمی دهد دستبندی بعضی از این در رابطه با انصارهایی که در بالا ذکر شد در این جدول خلاصه می شند سختی خاک تمدد دوده و سیلان آب، انرژی و قدرت آتش، آزادی و ریتم هوا عدم وابستگی و کنترل اتر تصاویر ذهنی به چهار دسته تقسیم می شوند: یک دریافتی یا همان تصاویر احساسی، لمس و علائم مخابره شده از تصاویر و اشکال مردی دو انعکاسی، اندیشه ها و ارکان خلاق، مانند استقرار و قیاس، تجرید و تعمیم ارکان جستاری این مکانیزم ها سؤال و تمیز است رکن تعمیم میپذیرد و بدون سوال کردن فرمان را اطلاق میکند سه، محرک، دلالت بر اعمال و فعالیت دارد و چهار مطلق نمایشگر دانش و فهم از اصول، آرمانها و نمادهاست. کار بعد از تقسیم به اصول به مکانیزمهایی تبدیل می شود که فرمان یا هم دارند. اصول عبارتند از دانشی که پس از به بستن به حکمت بدل می شوند. اصول را میتوانیم تماماً دیاموزیم، روی آن تفکر کنیم و از زوایای مختلف مورد مشاهده قرار دهیم. مکانیزمها ها عبارتند از اصلاح کردن اصول با استفاده از باطل کردن، مراقبه و یا اندیشه. مانتراها استفاده از فرمان به منظور اعمال یک اصل، با ذهن ناب خداگاه می باشد هنگامی که با صدای بلند ادا شوند می توانند به منظور نقل یک اصل از. از مرحله احساس به هیچه عمل مورد استفاده قرار گیرند عامل احساس بهترین و آسانترین حلقه پیوند با ذهن ناب خداگاه است. راز کنترل کردن رکن ناب خداگاه در قابلیت عمل بر روی فرمان‌ها است که از الگوهای احساس می میشوند. لازم است چاشنی احساس را فراسوی کلمه فرمان تعریف کنیم با تجربه ذکر با صدای بلند و دریافت احساس آن میتوانیم یک تماس بیواسطه با ذمیر ناخودآگاه خود برقرار کنیم یک تصویر ذهنی تحت تأثیر فرمانهای کلامی پربرش میابد احساس شده باید در خلال تمرکز برقرار باشد و تا حد امکان یقین مثبت در آن تعبیه شود چون درست به همان میزان است که ما میتوانیم فعالیت خالص و مستقیم عبر آگاهی خودمان را به خدمت بگیریم یکی از بزرگترین رازهای اعمال فلبداهه در شناسایی جوانب و نشانه نفوذ خلقیات منفی است قدم بعدی شناسایی محدودیت ها و جستجوی دانش لازم برای برطرف کردن آن محدودیت ها، فهمیدن و به کار گرفتن درست مکانیزم آغاز به درک این نکته است که چون اقدامی امکان پدیر است راه رسیدن به واقعیت از میان اوهام میسر شده است ما نمی دنیا را نادیده بگیریم جستجوی واقعیت با نادیده گرفتن دنیا به معنی اقفال کردن خودمان است همه جا تعادل حکم واجب است تا همین جا کافی است.